بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المسلين وآل وصحبه أجمعين أما بعد في دماء بحث سيرات مصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك ما أدعى بحثي بحث أزيات مشركين دوشتين نسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالو ذنيري ذنيري رومي و همچنین قصه خباب ملعرق رو داشتیم که میاد در نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم شکایت میکنه میگه یا رسول الله من دیگه توقع ندارم خیلی داریم اذیت میشیم خیلی داریم شکنجم میبینیم رسول الله صلی الله علیه و سلم نراحت میشن و میفرماین در امتای پیشین اشخاصی رو میوردن میشار رو فرق ترشون در وسط فرق می گذاشتن که از ایمانشون برگردن ولی برنگشتن اینجوری قدرت و استقامت قلب داشتن و اینجنینم خداوند در قرآن یاد میکنه حتفتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثتم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب آیا فکر کردید که همینجوری به راحتی وارد بهش بشید و آنچنان که امتهای پیشین امتحان شدن، امتحان نشید خیر. به همین راحتی نیست انسان یک لغمه لقمه غذا را به سادگی به دست بیاره. انسان با زحمت بکشه. این ایمانمون باید ازش محافظت بکنیم. این اسلاممون باید درش اخلاق داشته باشیم، بندی داشته باشیم. بهش به همین سادگی نیست، بهش ابدیه. این دنیا گذره. بعد از اون آمادگی اصحاب در مقابل این شکنجه را داشتیم چون رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها توصیه میکرد که اونها آمادگیش داشته باشند. از بحث قیام اللیل و از بحث نویدن نماز و شب خواندن و خاندن سورهای طولانی و این مواحظ توصیه ها را داشتیم مشکه این انان آن ناکام موندن نمیرن چیکار بکنن راهلی چاری بحث میکنن مناظره میکنن به نتیجه خب، بکنند؟ میان شکایت میکنن نزد اموی رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد ابو طالب. امرا نذر نزد نزد اموی رسول الله صلی الله علیه و سلم ما قد اذانا ابن اخيك. پس درد دلت مرا اذیت خارجه. دیگه بس کافیه در مسجد اومده در مسجد حرام مده در مرا اذیت میکنه. ما چیکار بکنیم؟ راه حلی نداریم. تو خودت یه کاری بکن. اموی رسول الله صلی الله علیه و سلم دست به دعا اقید. کارندش که برو بين رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوك بيض نظر مال رسول الله صلى الله عليه وسلم مين در نظر عموية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميل شنا من نجوه بأثمان نكونن ومفتشنين نفرمينا أترون هذه الشمس إن خرشيدوا ميمنين قالوا نعم بال ما إن خرشيدوا قشن ميمنين قال فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم علی انت استشعل منها شعله میکرد من درکهانم نیست که این دعوتم رو رها بکنم دست خودم نیست همونطور که در توان شما نیست که این خورشید را بیارید کائن یک شعله را برای من برها بکنید من نمی‌تونم دست خودم نیست این دعوت من نیست من که برای خودم دعوت نمی‌دم این دعوت ترور دگاره وحی خداوند خداوندی که ما را رو داده به من دستور داده که چنین کاری رو بکنم ابو وقتی که اینچینین سخنهایی را میشنوه میشنوه میگه: واللهی ما کذبن ابن اخی دروغ به ما نگفت پسر برادرم حرف حق رو داره میزنه از طرف خودش نیست میگه تراجعه اونها برگشن پشت دادن اینچینین مطالبات و اینچینین نمیدونم خواهش ها زیاده خب الان مش بازم باز هم نتیجه ندیدن باز پاسخی ندیدند چه کار بکنن، راه حل دیگری رو اندیشیدند. گفتم بیایید از رسول الله صلی الله علیه و درخواست بکنید این کوه کوه صفایی که هست تبدیل به طلا بکنه. اومدن تا اومدن این چنین درخواستی رو و گفتند که ای رسول خدا، این کوه را طلا بگردان. رسول الله صلی الله علیه و سلام دعا کردن بدأت دعاء فأتاه جبرئیل و مَث فقال إن ربك عز وجل جل يقرأ عليك السلام خضران السلامة ميلا تنين ميليات إن شئت أطلح لهم مصطفى ذهب أقرمي صحيب إن كوه سفارة خضران تلاب وشن قرار ميلا أعطي خضران كشيدة بعيدة خضران قادر خضران بلي كنين ميليات نقول كمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين میگه اگر کافر شدن بعد از این که با می خودشون دیدن این کو تلا شده بازم پشت دادم بازم کافر شدن دیگه عذابی میدم به اونها عذابی رو نازل میکنم که هیچ کتی همچین عذابی نذیدن و ان شاعت فتحت لهم باب التوبه والرحمه واگر من میخواهی به جای این در عذاب و شکنجه در توبه و رحمت به اونها باز میکنم که شاید توبه کنم و یک روزی برگردن رسول الله صلی الله علیه وسلم اون اونجا حد که دلش به میگه الله در توبت و رحمت و باستان و حالا میاد در قصه های آینده خواهد اومد که رسولات الله علیه و سلم شیلی میگوید به فرشته کلها که شاید از کمر اینها از اینها فرزندان بیام خدا پرست بشن خیلی خیلی رسول مطمئن الله علیه و سلم در رحب بودن یعنی عجیب رحمت داشتن یعنی تمام های نیک پیانبران و بشر همه داشتن از از, از کرم و بخشش و رحمت و نمیدونم تواضع و فروتنی این صفات ما در اینجا لمس میکنیم این قطع اذیتش میکنن این قطع نمیدونم فنانش میکنن احقابش رو اذیت میکنن ولیکن با این موجود درخواست میکنن که کوه تلا بشه و چیزی هم نیست برای خداوند و خداوند او این اختیار این مجال میده که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی رحمت. شاید انتقاب میکنه توبه توبت به خدا ش ابن عباسی نیم میگید این آیات در شأن این مسئله نازل شده و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون و آتین سمودن ناقت مفسره ف آیات میگه ما آجد نمودی که آیات بفرستیم مگر اینکه که امتایی پیشی تکذیب کردن همان تو که قوم سمود وقتی که در خط کنن شطوری از دور بیرون بیاد دیگه شطور از دور بیرون نیومد و بعد چی شد پشت د و کافر خودم میگه یعنی که ما هم اگر بلفرد، این کو هم تلا بکنید اینها هم بازم کافر میشن خداوند نمیخواد دل رسولت رو بشکنه با این وجود که میدونه خداوند که اینها کافر میشن ولی یعنی که باید اطمان خوجت بشه میگه خب باش من معجزاتی رو میدم از جمله معجزاتی که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم داده شد بحث نصد شدن ماه ماه دونیمه شد تا جایی که یک کره در یک کره توی حرف قسمتی دیگر در سرپه دیگرش واقع شد و این آیات نازل میشه اخترابت ساعت ونشق القمر و امیر آیة نیوزد و یاول صحت سحر مستمر بازم وقتی که این چیز رو میبینم ماه جلو میشه نت میشه انکار میکنن و میگن که نه این صحبت مرسلا خدا الله, الله علیه فت نم مرسح کرد جنوهای راومات جلو من اورده انت خیالو بماند سبحان الله، اگر قراره که این حادثه صحیح بخاری و مسلمه. است، من قبلنا به این مرتبطه تذکر دادم، مشرکین الان انکار میکنند و میگن که این, مح... م... این واقعی که به ما رخ داده صحر بوده. خب، چندی نمیگذاره که ادهی از شام و از فلان و از فلان میان، میان که بله، این حادثه، این شقاق قمر رو ما هم دیدیم، تو اگر قرار باشد، صحر باشد، صحر فقط میتونه به کسان صحر بکنه که جلوه روش خب اون کسانی که در شام و دمشق و در عراق و فلان این واقعه رو دیدن پس اونا چطور صحب بودن چیز, خ... چیز عادی و طبیعی نبوده که این مسئله که یعنی ما بخوام بگیم که سحر و جادوگریه سبحان الله کسانی در امت اسلام از خود مسلمانان از کسانی که لباس مها پوشیدن این, واقع این واقعه این وقایع را انکار کردن من قبلا می تذکر دادم من باید چندی از این اشخاص بحثم کردم گفتم سبحان الله شما این آیات را انکار میکنید و میگید شاید تفسیر دیگه را داشته باشه شاید تفسیری دیگری داشته باشه گفتم سلطان الله برید به انترنت یکمی کمی مطالعه بکنید ببینید همین سایت ناسا همین تصویر ماهو گرفتن گذاشته سایت خودشون چی شده گفتن که بله این ماه طبیعی نیست این ماه یک روزی دونات شده چه موقع تاریخش مشخصی وقتی که روی هم نشسته کاملا روی هم ننشسته یعنی اگر دایره باشه یک قسمت راستش بالاتر از قسمت چپ بشه از وسط هم یک شیاری هست از بالا تا پایین خب چطوره که این ماهی که کوروی شکل بوده و در هیچ سیاره و ستاره این چنین چیزی نیست که وسطش نث باشه چون یک حالت یک گلوله و یک توپ گردی هست که و بلکه با بوگرد درست بگیری خب چطور میشه که این نث بشه حتما یه کار خارق العاده‌ای رخ داده، یه چیزی عجیب غریب رخ داده. خب چه حادثه‌ای هست؟ کی در طول تاریخ ادعا کرده که این ماه نشده؟ غیر از رسول مصطلی الله علیه و سنت، غیر الان چه کسی در تاریخ نقش شده؟ با خودستون در کتاب‌های تاریخ، خود نصارا هم نمیگن، الا بل پس شما شهادت‌های ما رو قبول ندارید. خب چی میگید کتاب‌های تاریخی خود تاریخ نمی‌تونه نصارا و نصرانی‌ها و یهود که خودشون نوشتن بله در تاریخ چینین حادثه ای رخ داده که مهند شده. همرا گفتم اقرار علمی، اقرار خود اهل کتاب و مشرکین و از جهت ما خود مسلمانان. ولی که انسانه نمیخواد فایبند بشه، میخواد دین دین‌گریزی در ما هست، یعنی سختیه، دین سخته و تحملش هم سخته. ما میخوام از دین بدور بشیم. نمیخوام فایبنده به دین بشیم. بخاطر خاطر همین اینجوری به حالت راشیها میکنیم که یک یک طریقه بگین که بله این آیات منطق نداره یا این چینینو چنان شده. از جمله مسائلی که حقیق یعنی نوع برکرد مشتقی بحث برکرد تون با سخنهای تونی رسول الله صلی اللہ علیه سلم، سی کردم با اسلوب نر با آنها بحث کنم نشاط آنها. یعنی فکر نمی‌کنید که فقط این بود که یک معجزه بیاره و آنها بگه بواسطه من کلامم بشید هیچ وقت نه از قدرت استفاده کرده نه از استفاده کرده نه استفاده کرده نه از پول استفاده کرده این دین در شماست فقیر و غنی و تاجر قدرتمند و, و غیر قدرتمند نمی‌شناسه این دین برای همه است هم. میاد و آنها بحث میکنه. میگه که یا معاشر اخروش انه ليس احد يعبد من دون الله بی کسی نیست که غیر از خلق قدرت نمی‌شه درش خیرندیشو. آیا رحمت خیر درش بوده در هنگام حیاتش بوده الان ها رفتند. و قد علمت قریش ان النصارى تعبد عيسى بن مریم الله قدرت ك... 200 میگه که که قریش میدونستن که نصارا عیسی رو میترسن. جین میگفتن یا محمد الا تظن ان عیسی كان نبيا و عبدا من عباد الله صالحا. میگه یا ادعا نداری که عیسی پیامبری و بنده از طرف خدا بوده، شخص صالحی بوده. فَإِن كُنْتَ صَادِقًا فَإِنَّ آلِهَتَهُمْ آلِهَتُهُمْ أَكَمَا يقولون بس اگر قراره که که تمامی اون چیزهایی که پرستیده میشه ناحق باشن عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم چی میگی که این نصران‌ها رو میپرن الله وجل ولما ضرب ابن مریم مثلا إذا قومك منه يصدون قوم الله صلى الله عليه وسلم میون با تندی برخورد میکنند و میگن که چی؟ این چیلین اقوالی را میارند که با آیات خود خداوند مبارزه بکنه میاد خداوند در بحث نیفه علیه السلام از پیانبرش دفاع میکنه چیلین میبید این هوا الا عبدون انعمن علیه ای بود از طرف ما نعمتی بهش دادیم و خود عیسی عليه السلام دعوتش هم چنین بود ان الله هو ربي و ربکم فاعبدوه دعوته چنین بود هیچ وقت نگفته عیسی علیه السلام که من رو بپرستی انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم این آیاته نازل میشه دیگه دست دستپاشونو گم میکنن میان به یک دیگری وارد دیگر میشن غریبانگیر یهود میشن یهود به دادمون براتید ما نمیتونیم با این شخص برخورد بکنیم یک نمیدونم یک راه حل راه را ای به من بدید میان یهود بهشون میگن شما میدونید چه کار بکنید برید نزد این شخص بهش بگید روح چیه این آیات نازل میشه که عن الروح قل الروح من امر ربی اگر روح سوال می کنن بگو که این روح اثر خدا هر کسی که در سوره اسراء اومده سوره یسراهم مدنیه لیکن شاید این واقعه دو بار تکرار شده یک بار خود یهود صراحتن درخواست کردن و یک بار به واسطه همین تهمت ها زیاد، اتهامات‌ها زیاده مثلا یکی از ها این بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم این بَحی که درباره القمی کنه این قرآن و این سخن‌هایی که داره به مسلمان‌ها میگه فلان شخص و فلان شخص از مشرکین یادت میاد یا از یهود و از اصحاب کتاب حالا اتمشون در روایت‌های مختلف زیاد اومده صحیح است در روایت این که یکیشون یسار و یکیشون خیر بود دو تا شخص اعجمی بودند که تورات را برای مردم می‌خواندند مشرکین گفتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دو شخص نوجوان این دو تا دو شخص یثا و خیر یاد می‌گیرد سبحان الله تورات به زبان یهودی نوشته شده به زبان عبری نه به زبان عربی خداوند چنین آیات را می‌فرستد و لقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي ينشدون به إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وهذا لسان عربي مبين ان زباني كهى تهمت به نبي رسول مود كهى الثلان شخص يترقى زبانه أشخاص زبان أعجمي زبان عربي نصبعين سخاني كرسول الله تلاواتهي كنن سخاني عربي ومبين خداوند داره مبارزه میکنه با آنها اگر مردی یک آیه اگر مردی دو آیه اگر مردی یک سوره مثل قرآن بیاری، نمیتونن سخنی از طرف خداوند، از خود پیامبر الله علیه وسلم امنید درخواست زیاده مثلا درخواست میکنن قرآن رو یک گفه بیار بمون لولا نزل علیه القرآن جمله واحده خداوند من چنین میگوید در قرآن کذالی که لنسبت بی ف و رکلنه و ترتیره ما این ذکر و این قرآن رو کم کم فروف رسدیم تا اینکه بهتر او را بگیری و بهتر درسی باشه برای مسلمان ها مجادلی میکنن در قضا و قدر خدابند درخواست میکنن که بلال و سحیب و دیگر مستضعتی رو دور بکنن رسالات رو درسان از خودش دور بکنه برانه همانطور که اگر هست در قصص انبیا ما گفتیم که از نور درخواست کردن که زعفا و اونهایی که ناتوانن از خودش, خودش برانه و ما نراکت تبعه ایلن الذين هم اراضیلون بعدی رعی چین گفتن بکی به نوح علیه السلام و ما نراکت تبعه ای نوح ما کسانی که داره برات میبینیم کسانی نیستن مگر اراضیل رذیل یعنی کسانی که فقیرن کسانی که دستشون کوتاه از دنیا فقیرن ناتوانن بازی ارّا یعنی کشاورز هر چی بهشون میگی ما منشین نمیخوام دین با مزاج من بکنه نمادو دوست داشتیم اومدیم خوندیم نداشتیم نخوندیم هر که با عقل ملیو دارم ما میخوام این چنین کاری رو انجام بدیم این آیات تحسیت برای رسول الله صلی الله عليه و سلم برای همینه که خداوند شین خطاب میکنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این آیات تحسیت که گفتم از امت خیفشی خدا من جبلات ربهم بالغذات والعشى يريدون وجهه في كثانيك الآن شهور نشسان براي خدا من دارن دعام يكُونن از خدا ميتلبن يعني بس عجيب يا رب ولا تترد للذين يدعون ربهم يدعون يعني ميتلبن از خدا خدا من والعشي سبگاه و شامده وصف همچنانی داره بهشون میده این چیلی اون سب این تربیت خداوند داره اونها را روش تربیت میکنه برای اینکه مفتحیم و استقامتبار در مقابل دشمن بی ایستن یوریدون وجه برای خود خداوند این صحابه ما هستنان این صحابه ای که خداوند در بارشون بیه الله عنه مراد و عنه کسانی که تعنی وارد بکنن، چی میگن در مقابل این آیات که در وصف از رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد شده؟ ما بقاطر محبتش و نسبت به خدا بند، مخ... بقاطر محبتش نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم ما انها رو دوست داریم. درسته که ما انها رو ندیدیم، درسته که ما انها نشست و برخواست داشتیم، ولی این آیات در مزخ اونها کافیه. چه متی بالاتر از این که خداوند اونها چنین یاد میکنه؟ کنها، طبقه و شامگاه همیشه در حال عبادتند و برای خدا، ن برای دنیا، نه برای نفاق، ن برای کوف، ن برای ابو جه، برای فنان و علان، برای خداوند. روزی رسول الله صلی الله عليه وسلم نشسته بود با اوش. بحث میکرد، باعث باشند صحبت میکرد. عبد الله ابن ممتصوم که مشهور به ابن ام ممتصوم، از رسول الله صلی الله عليه وسلم میان. رسول الله صلی الله علیه و سلم نشان با ثران مشرکین سوالی داره اون مضمون میگه یا رسول الله من سوالی دارم رسول الله کمی راحت میشه حالا وقتشه من دارم با اینها بحث میکنم تو اومدی به زبانش نمیاره فقط یکم روشو تاریک میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلام چنین خطاب از آسمون هفتم نازل میشه و رحم میشه بر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم و وتولا ان جاءه الاعمى روز تاریک کردی روش تاریک کرد ارزش و تولا و جاهو که اون شخص نابینا اومد روز و تاریک کردی این چینین نم خطاب خدا من میگیره به رسول الله صلی الله علیه و سلامه این شخصی که مؤمنه این شخصی که خداپرسته ارزشش از تمام اینها بیشتره خداوند به مال و دنیامون ارزش قائل نیست به چه ارزش قائل به این عبادت و به این اطاعت و به این نمازمون این شخصی که نابینا است که صورتتو نمیبینه بلکه خداوند میخواد عزت مسلمانی را و اسلام را برسونه که این شخص عزتش از عز ابو جهل و فلان و اموان درات الله صلی الله علیه و سلم و فنان و فلان ارزش از اون چیزی هست که خداوند برمیخنه این چیزین ارزش های را و تذکراتی را خداوند به رسول الله صلی الله علیه و سلم میده و همچنین به مؤمنات اسلام یعنی تک نکنیم که این درس هایی که هست بحث نمیدونم روش برخورد بحث رو تاریکی و نمیدونم این مسائل ما شاید دو جاهایی به خودمون شاید فکر بکنیم یه چیز ریزیه مثلا بالفر شخصی تماس میگیره یا شخصی مثلا برخورد میکنه با ما خیلی برای من طبیعیه که مثلا رو من تاریک بکنیم یا ناراحت بشیم یا خشکیم بشیم برخورد تندی بکنیم فوشی بدیم ولی برای خداوند حتی حرکات ریز مهمه یعنی این اینجا نگاه بکنید چون مسئله دعوت خیلی مسئله مهمیه و مسلمان عزتش در نظر خداوند خیلی بزرگه ببینید خداوند چگونه سرزنش میکنه اون شخص بزرگ چرا اون تو تاریک کردی نباید روز تاریک موقع در مقابل مؤمن پس ما ما بهن هم باید بگیریم رومون تاریک نشه برخوردمون تن نشه ارزش مؤمن برای مؤمن ارزش مؤمن از هر کسی که باشه ارزشش بالاتر در نظر خداوند عجيب به ایمان ان اکرمه عند الله اكرمه خداوند همون که رسول الله هم, هم بفرماید لا ينظر الى صوركم ولا اشجاركم ولا فلان و فلان ولا اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم خداوند نب به مالمون نگاه میکنه نه به نب نه به شکل خالقمون نمیگه سیاحت و فلانی هست مال اینجا و اونجا خداوند نگاه به قلبمون میکنه قلبمون باید پاک و صاف بکنیم برای خداوند سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك الحمديك صلی الله علی محمد و علی محمد